حرف آخر کتابو خوندی؟ تموم؟ خب بلا میتونم راحت بشنم و برات بگم چی شد و چطور شد که این کتابو ترجمه کردم؟ راستش بچه که بودم یه آقایی بود تو تلویزیون اسمشو خوب یادم نمیاد آدم پیر گوگولی موگولی باحالی بود از اینا بود که میومد درباره ستاره ها و کهکشان ها حرف می زد این آقا گفت کتاب کوچیکی هست به اسم ناتور درش که هر جای دنیا میره تو چمدونش و از کنار دستش دور نمیکنه این تنها کتابی بود که تو اون برنامه اون آقا خوب معرفی کرد بعد که بزرگتر شدم رفتم سراغش و خوندمش راستش اصلا باش حال نکردم گفتم این چیچی بود که این آقا پیر معرفی کرده گذشت و من بزرگتر شدم میدونی خودم مثلا از این نویسنده نویسنده ها هستم نه نه نه از این آدمای تو نیستم ولی خب می نویسم دیگه چند سال پیش مشغول رمان نوشتم بودم که همین کتاب آقای سال رو دوباره یه بار سرتا تخت خوندم خب خفم کرد درجا کشتم و اندختم کنار حیرت کردم چند و بعد داشتم یه برنامه ای می میدیدم درباره نویسنده ژاپنی که تو ایران خیلی گل کرده همین اقا هاروکیمونرااکیو میگم نسخه یه ترجمه آقای موراکامی از انگلیسی به ژاپنی ناتورادش تو ژاپن جز کتابای پرفروشه. آقای مراکامی هم خیلی دوست داشتم و همینش باحال بود. تازه تموم بره های انتشارات انتشارات میلکانم کلی دیوونه کتابن. باور کن خودشون بهم گفتن. خلاصه همین حرفا باعث شد بشنم پای ترجمه این کتاب. موقع ترجمه کتاب خیلی اتفاقات دیگه افتاد و دوباره خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. ولی به قول دوستمون هولدن که میگفت هیچ وقت به هیشگی هیچی نگو که اگه بگی دیگه گفتی و رهاش کردی اون وقت دلت براش تنگ میشه منم دلم نمیخواد بیشتر از این برات بگم چون منم دلم تنگ میشه بر تمامش راستی بگو ببینم این شعر آقا سعدی و شنیدی که یکی روستایی سقط شد خرش علم کرد بر تا که بستان سرش جهان دیده پیری بر او برگذشت. چون این گفت خندان به ناتور دشت مپندار جان پدرکین همار کند دفع چشم بد از کشت زار که این دفع چوب از سر و گوش خیش نمی کرد تا ناتوان مرد و ریش چه داند طبیب از کسی رنج برد که بیچاره خواهد خود از رنج مرد آره شنیدی میدونم. پس فقط امیدوارم همینقدر که کتاب و خوندی دوست داشته باشی همین آراز بارسقیان دیماه 1393